فکر بکنم خواب خیال بودن اما اما فکر بکنم خوابو سهلن بیدار بشه یه لحظه چشمانه میتونم بزندن اما بهتون بزندن سویته تشمان بیدار چشم بید قول درده بودن ماراقا به طهره خانمون شادی از یه ای خونه باده په په یه پره پیر داری مهریز همه زندگیش پیزه بود که از اشگه بگو تو کمک می کنم برم خودم معرفی کنم پیدا کار من نمی خوام ببینرم کار دارم که با انجام بدم خدایی که میشه داشتم و دوباره پیدا کردم میخوام باهاش ازدباهش کنی باید... با رو... چه بله این سرم بای صالح علو آرش کجایی؟ صحیح خاکی بابا خدا را احمد پیش مادرت اومده بود اینجا واسه چی؟ نگران بود، ازم پرسید چیزی شده تو چی گفتی؟ ایچ از رب خب هم نکرد بیگه با هم نگرانت شده رفته پیشش حلو حلو آرش نظری نتیجه استعلام سرور دومه مورد دوم و سوم به نظرم خوبه با شما نگاه کنیم ببینیم کدوم مناسب اینا رو خودشون پیگیر کردیم آقای نظری خواستم آقای نظری خواستم آقای هم لیست از ایروز که گزارش شده تو افتی قلیم. نظری کده اینا رو با آقای جوا این مورد اول این مورد بر چی رفتی خونه ما ها چون نگرانت بودم نگران من بودی تو الان مادرم هم نسبت به من بدوی نگران کردی مادرت از من نگران تر بود گفت و شام نمیخوری نمیخوابی کابوس میبینی فکر میکرد دفتری ولی نبودی آراش تو فکر کردی من بچم؟ یه چیز مهمی داری از من پنهون میکنی من شرایتمو بهت گفتم رونا دیگه نمیتونم برای چی میپرسی این چه شرایطی که تو امروز بار تلفن منو جواب ندادی من نمیتونستم آرش ما یک هفته است درست با هم حرف نزدیم بیرون نرفتیم یکی در میو میای یه سری میزنی میری بابای من حالش خوب نیست رامین شد مجبور شد تو روز چند ساعت بره کارخونه کی اینجا میچرخونه از وقتی سرکله این دختره بنافشه پیدا شده ریختی به هم چه ربتی به اون داره امروز اومد اینجا دوباره با برگه شکایت میگه سهم میخواد ولی من فای دنبال چیزی دیگه ایه باور کن من نمیدونم دنبال چیه نمیدونم نایمت خونت خونه گفت آدرس تو داره میاد اونجا میشه بگی چی بین شما بوده آراش اگر چیزی بینتون بوده من میخوام حقیقتو از تو بشتاقم دروغ نگو به من یه بار بهت گفتم هیچ چی بین ما نبوده من نمیدونم تو حالا که برچی به من شک دادی بابا تو خودت تو شد یه نفر میاد میگه کلی بهش وعده و وعید ولش کردی رفتی تو باشی چی فکر میکنید میدونی من اگه جای تو بودم چی فکر میکردم فکر میکردم یکی این دختره تیر کرده بندازه به جون من کی چه میدونم کام یار هر کی کام یار این دختره ها از کجا میشناسه ماله هرچی به تو بگم تو باور نمیکنی چرا حقیقتو بگو باور میکنه میدونی حقیقت چیه حقیقت اینه که خواهر من دچار مشکل شده حقیقت اینه که اونی که تو شرکت زده بودنش مرده میفهمی مرده حقیقت اینه که خواهر من با مزنون ماجرا در ارتباط بوده باتم برات بگم آره؟ خب تو عی چیکار میکنی؟ دارم دنبال یارو می خلا خب هم من می امروز هم رو ببینی من دفترم آره میبینم ات خدافز امروز به با مام گفتم نه این سر کار. خوبه. استراد می‌کردیم بی بهتر بود. نمیتونستم تو خونه بمونم. کلافه می‌شدم. چقدر سفارشا کم شده، بگو. قدرت خرید کم شده. اغلب خریدارم بیا چکی هن یا دستی هن. چاره ای نیست دیگه. مودی چکام سر رسید هیچ‌کون‌شون هم پاس نشد. به خانون کرمی گفتم شما را در بیارن زنگ زنن بایشون تو نگران کار من نباش برو با کار خودت برس اون کار که داره پیش میره مشکلی نیست مشکل تون چی شد؟ حل شد؟ آره قرض کردی؟ نه سرمایه گذارو بردن مطمئنه کامیاره. بخ... رونا چه جور رضایت داد خاطر شرطی که شما گذاشتیم پس برای ازدواج با آرش حسابی مه اول زیر بار و قرض گرفتن از کامیار نمی رفت ولی بعد به جایی رسیدیم که. یا با جمع می یا اما میار به منم پیشنهاد سرمایه گذاری داد. من باش ط کردم وقت داری بیاد اونجا. فکر کردی اونم گوش میکنه؟ این سررسیده چگاهتون نددی که با چجوری پاسش بعضی از این ماشین آلات گذاشتم برای فروش. تولید دوکم کنیم کنی؟ چاره ای نداریم حالا فعلا نفروشین ا فکر کنم تو یه رای پیدا کنم و این فروش جننس و سفارش گرفتن چه عجب یاد ما کردی؟ هنوز دیکه می نید خیلی وقت ندیدنت انقدر همه درگیریم که برای من که از دیدن خوشحالم همطور فکر کنم دیگه باید بهت تبریک بگم میدونی که من از همه چی خبر دارم بله برای همین اومدم سراغ شما مادم مارپل <تصفيق> خبر نامزدی به رو که شیرینه خیلی خوشحال شدم شیرینش یادت نره اونم به موقش حالا کار تو بگو. ببین تو برفشه شاکری میشنسی قد متوسط صورت سبز، سال پایینی ما بود آه، اون دختری که خودشو میچسبونده به ماها ها نمیدونی اون موقع با کسی و قرار ازدواج داشته نه نه حالا تو به اون چی کار داری میخوام بدونم خب چرا چی شده اگر میدونی که جوابم هم بده اگر نه لکی من از این جیم نکن. خب باید بدونم اخلاق منه که میشناسی نمیخوام ازلا خیلی خب حالا چه زودم قهر میکنه نمیدونم واقعا تو پایان نامش مونده بود من شنیدم آرش براش نوشت یه مدت با هم کار میکردن تو چی میخوای بدونی رو نه باید بیرو دروسی به بن بگی نمیدونی چیزی بین اون آرش بوده یا نه خودش میگه بوده ولی آراش منکر میشه حالا بوده که بوده چه اهمیتی داره تو هم قبلا با کامیار ازدواج کرده بودی مهمه؟ خم بفهمم آرش به هم راست میگه یا نه این مهمه یکی دو تا از دوستش رو میتونم برای پرسجو کنم بکن این کارو حالا برفرض که اون موقع هم دیگر رو دوست داشتن و یه چیزی بینشون بوده حالا که نیست آجینو بفهمی که قرار ازدواجتون رو به هم بزنید؟ چون دلیل سری رفتارهای آرش برام روشن شد. ما بیا بشین یه دق کارت دارم شادی کجاست؟ سرش درد می کرد رفته بالاخواابیده زنوزی که رونار رو دیدی و این کار رو باشور کردی خیلی به هم ریخته ای میدونم یه بخشش به خاطر فشار کاره یه بخشیشم به خاطر مخالفت من پدرش من اگه با این ازباج مخالفت کردم به همون دلیلی بود که بهت گفتم ولی باقیت اینه از روزی که رونا رو دیدم و علاقه تو رو نصفت بهش میبینم نظرم کاملا تغییر کرده به من نمیگی ولی من میدونم برای اینکه کارت به نتیجه برسه، و بتونی با رونا ازدواج کنی به پول احتیاج داری من یه کمی پول برای روز مبادا کنار گذاشته بودم. یه مقدارم طلا دارم. حالمو میدم خرج کارت کنم. شاید کمی نسرز و فشارت کم بشه. بگیرش. رئیس. شاده های روز خوبی نداره میخواه مقلن تو خوشحال باشی همکره سلام سلام ایتا مخصوص گرفتم در درد نکن ولی من فرص بود نمی کارم حالا یه من امتوان کن بچه من <تصفيق> <رفتم> <تصفيق> سور بدم سور بابتشی. بابت چی؟ بابت اینکه میخوام خونم ازت پس بگیرم مبارکه اگه به قیمت روز باشه مشکلی نیست فروشنده به قیمت روز بخارم ازت مفرین ما با تفاوتش رو از کجا آوردی؟ حالا دیگه باشه شما پولو بده خونه مال شماست خونه ازت تو بگیرم خیالم راحت میشه زن امروز نفهمیدم اگه میفهمید قیامت میکرد کرد <تصفيق> من بوددم چطور تو الان بهش نگفت نحت میدونست دیگه اگه میدونست که نمیزش آ خ ما با تفاوتش میشه هفت هزار دلار او هفت هزار تا هره از بونگا پرسیدم قیمت خیلی بالا رفته البته برای هممحله اینقدر رو بیشتر از این حرف است نمی شما گرد این تلفونه جواب بدم. نفهم ببینم تو نمیخوای این بیایم رو بگیری نه باچهار گذاشت افتی پشت من نیان کردی؟ میدونی که چه اتفاقی افتاده؟ قتل افتاده گردنه هدیه دیگه عزیزم بیست سانه میخوام الان ست تا میخوام داده اویداد نکنم که گفتم با ازرست آه خوشمزه است. <سؤال> <سؤال> این <سؤال> شاولا مصموی بلدان میگه صد تومن میخوام نه ها اول بهت نگفتم مرتی که ولت نمیکنه آرشپور همه چی بگو هم از این عذاب وجدان راحت میشه از دست این مرتی که قصاص میشم آقا نمیذاریم میریم با پدرش حرف میزنیم من هستم مادرت هست خواهرت هست ازایت نمیده اه. تو برای چی اینقدر ناامیدی اون پیرمردی که تو دیدی بهش میاد انقدر سنگ دل باشه نه ولی پسرش کشته شده یه دونه پسرش کم چیزی نیست آرش جان این کاری که کردی اتفاق یکی افتاده و بعد وایسی اینجوری همه زندگی تو میبازی یا همین الانو چون باختم الان نمیدونم اصلا برونا چی کار باید بکنم یعنی چی؟ صالح من قتل کردم میفهمی یعنی چی؟ حتی اگه ثابت کنم که عمدی نبوده، کمه کم چند سال زندان مرا میبرن. رونا رو که نمیتونم پاسوز خودم کنم میتونم؟ رونا خودش باید تصمیم بگیره که میخواد پای تو وایسه یا نه. تو که نمیتونی به زور خودت برونیش. من باید این کارو بکنم. نمیتونم بذارم زندگی رونا به پای محروم بشه. آرش داری اشتباه میکنی. نمیتونم. دارم دیو میشم. آرش تو نمیتونی به جای رونا تصمیم بگیری. اینقدر ناامید نباش. تو کارت درست انجام بده خودم بهت کمک میکنه برو بیش پدرش همه چی اطراف کن ممتنهاد نمیذاریم قول میدم بهت برو آراشم من زودتر از این آقا داشتم داشتم خدمتون اون تا گفتم سرتون شلوغ مزاحمتون نش. الان که مهمون داریم میخوان یه موقعی بیام که اگه وقت کاری هم داشتیم براتون انجام بدم یعنی کسی پیشتون نیست؟ خیم من بیام پیشتوم. باشه چشم رو چشم. خدمتوم میرسم خدا آفرز. خیلی کار درست کردیم مطمئن باشی اما منم بیام پیشت باشم یه سوالی شد تنها نباشی. نه نه. خودم برم بهتر. توی راحتتر میتونم باش آفرز. دست دادم می فهمم شما چه میکشی خیلی سخته حقیقتش یه ای چیزی میخواستم بهتون بگم نمیدونم چه جوری بگم اگه نمیشه باور کرد و چنین چیزی ممکنه همون شب قرار بود به این براش خواستگاری قرار بود کچلوار دومادی بپوش. حالا زیبه قروار ها خواهد, خواهد ...کرده بودم اگه سالم از بیمارستان بیاد خونه، سالمش ببخشه. حالا... حالا اگه ببینمش با همین دستان... دین راست بیگی بهش بگم ولی وقتی گفت از قاتله پسرم نمیگذرم و با همین دستای خودم دارش میزنم ترسیدم حالا اون فکرم چیزی گفت کجا ملومه میکنی زمان بگذره نظرش عوض بشه عوض نمیشه خارش جان تو یه خلوت به خودت مسلط باشی دیشب تو باره مادرت زنگ زده بود نگرانت باشی. شب اصلا خوب نبود خیلی بد خوابیدم هشت صورت پیشمان میاد جدو چشم نمیتونم چشامو ببندم و یادمون لحظه نگفتم برای همین بهت میگم باید بری بگی تو خلاص بشی اینا میگی چون جای من نیست. زندگیم تباه شد ساده تباه شد كوندي کن کجا نده درسم بره سراغ آگاهی خب برای همین میگم بعد خودت بری بگی یارش جان این خیلی فرق میکنه تا اینکه بفهمن کار تو بوده و گیر بیفتی الو هنوز جور نشده. تایم شب نمیتونم یکم بهم فرصت بده. الو. الو. وراش تو الان این پولو میدی؟ دو روز دیگه زایم زدن میگه 200 تا بده. 4 روز دیگه زایم زدن میگه 500 تا بده. من نمیخوام که من نمیخوام. نمی شب چه ضمانتی وجود داره تو این پولو بدی لوت نده؟ چقدر میشه؟ چرا میدونم؟ سی توانیم. خب. برقی یا شما ها چی کار رو کماکی من هیچ حسابی نکنم. یه هزار هم بهد نمیدم. چون میدونم آخرش چی میشه. دیوی سفر دیگه سفتان نام کرد. اگر این نختر رو بر اون درد سر درست نکنه تو دوست آینده به سود میریز کامیار رو حلش میکنه اون اصلا قرار نبود پاش پاس شد تو این شرکت حالا تو کلن این کار سپردی بهش رانو تو خود اون دیدی که چی شد کامیار تصادفی اومد دفتر یا این خانم شاکری رو دید همه چی هم فهمید باید خودش اصلا کرد که خودم حل میکنم و از این حرفا من چیزی بهش شناس کاری بهش شناس بردم چه جوری حل میکنه نمیدونم ولی خوب اگه این کارو بکنه چه اشکالی داره هیچی پاش پاز میشه اینجا نه نمیشه نمیشه ما هر شده باید این کارو راه بندازیم مهم این کاره است ببین من بهش نگفتم تو پول از کامیار گرفتی اگر پرسی بگو از یک از دوست دادگی سلام سلام سلام اون آدرسه برو خونهایی که ده دادم اون حالت خوب نیست چرا یکم بیشت باید خوابیدم چرا نمیدونم من پول احتیاج دارم سی تومن ریخته بودم تو ساک مشترک ده تومن برداشتم بیست تومن مونده یه مقدار بیشتر میخوام چیزی شدهرش این هم پول واسه چی میخوام و سه کرد دوستام مشکلی پیش اومده این پول ما شرکت رو بله میدونم من هم تو تأسیص این شرکت سهم دارم آره ملیم. ولی من نمیتونیم برای مسئله شخصی از این پول برداریم که من کلی مصیبت کشیدم تا گذار جور کردم من این پول لازم دارم چقدر میخوایم؟ پنجا پنجاه تومن پنجاه تومن؟ اصلا نمیتونی؟ من کلی روی این پول برنامه ریزی کردم خب من چند تا صحبه هم میفروشم میگم تمام برنامه همو به هم, هم میریزه اصلا موضوع صحب نیست رامین جان من برنامه در اختیارتون گذاشتم یک قرون پولم تا حالا نگرفتم هم که کلی ازش استقبال شده یعنی من حق ندارم پنجاه تومن برداشت کنم. بزنی روح سودی که بعدم میبرین اون موقع سودم کم کنین تو ما رو بردی دفتر وکیل که همه چی محکم بشه خودت چهر وظایف رو کردی همه چی قانونی و منظم و مرتب خب. الان دوست روز یه بارم که نمیای اینجا سر بزنی وقتی هم میای یا پول میخواه یا دعوا داری اه! آقا تو اگه افته تو گذاشی ما همه حس از تو نیست ما اینجا هیچ وقتم که اینجا نیستی. همیشه هم از ما توقع داری بجه اینکه به اینجا با ما کمک بکنی خب حالا اگر به جای سهم سعودشو بسید تو مثلا... دخالت نکن رونا مدیرعامل شرکت منم من تصمیم میگیرم آقا این پول برای مسائل شخصی نیست برای شرکته چون هم حق ازش برداری آرش چرا اینجوری میکنی چیکار کار کردم خب بابا به منم بگو بفهمم. کدوم دوستت مشکل داره؟ اونش به خودم مربوطه. آلو کجا داری میری؟ نیستی اصلا. رامینم 4 ساعت میاد میره. قراره نبود دو جا کار کنه. اون دیگه مشکل خودشه. بابا اصلا حالش خوب نیست. امروز نتونسته بره کارخونه. متاسفم. من 50 رو برای جور میکنم ممنون ممنون چیه مگه نمیگی لازم داری. خودم اینجا جور میکنم. از کجا؟ ای من باید همه چی به تو توضیح بدم. آرش بیا بشینیم حرف بزنیم بهم بگو چی شده حوصله حرف زدن ندارم هزار بار پرسیدی چی شده گفتم هیچ چی به یکی کمک کنم همین بکی نکنه پول واسه برفش میخواد اصن می‌فهمی چی داری میگی دختره رفته شکایت کرده و وقتی من بهش پول بدم از کجا معلوم دردش فقط برنامه است تو به من شک داری به تو شک ندارم ولی خودت بزای جای من چند وقت رفتاره تو بس شده شاید دیگه اعتمادی به این رابطه ندارم باید بیشتر فکر کنیم. بدن در باره آیم. درمون تصمیم بگیریم. منظوره چی؟ یعنی که من نمیدونم. اصلا ما به درد هم میخوریم یا نه؟ حالا بلندنشی بری سراغ مادرم. دوباره نگرانش کنیم. نفق قاطی میکنم برونم. ول تو جوور کردم.صد تا میخوام به دلار گهتی که قبلا گرفتی پنجاه تا الان بگیر کیفو بیار بده اون وا قبل مرگ پیشما بوده. میتونستم قط پول دی ازت بگیرم بهت رام کردم. چرا حالیت نیست؟ دیگم ندارم نمیتونم این پولو تهیه کنم سات بیا پین از زیر سنگم شده و جور کنم وگنه بالا داری امشب نمیتونم بهمه فرصت بده. فردا تا فردا زور علت ای این آخریشه. او کش قطعی سلام آقا نه آقا این چه حرفیه جانم در خدمت باشه چشکششم خوشش آدم خداحافظ خواستم بیا نکردم نه ولی همش میترستم تلفنم کنترل باشه اگه کنترل بود که تا گرفته بودن این دفعه که رفتم آقایی مطمئن بودن که من تو رو دیدم چیزش به دیگه دستی زدن به هم دادن که اگه جای تو رو بلد باشم و نگم خیلی برام بد میشه ساما بیا برو خودت معرفی کن هرچی دیر تر نمیتونم منش دلیلی ندارم واسه اینکه ثابت کنم بیگناهم مگه نمیگی او شب پشت دوستت بودی بابا من رفتم پیش مجید بهش سویش دادم بعد رفتم خونه خودم اصلا حرفشو قبول نمیکنن بهش میگم ای تو تمام مدت کنارش بودی پدر آقا پشما فهمیده که تو میخواستی انتقام بگیری کافیه که به پلیس بگی شو فامیلی رو پیدا میکنن شده من فکرمو کردم باید اینجا بریم بری کجا بریم چه میدونم هر جای هر کشوری که ویزا نخواد میفهمیداری چی میگی یعنی فرار کنی ببین من یه محضر عاشنا دارم میریم اونجا حق میکنیم باید میریم اگه بریم دیگه شک ندارم که تو آقا پیجمان رو کشتی چه فرقی با الان داره وقتی هیچ دلیل ندارم که ثابت کنم بیگونم هم چه فرقی با الان داره شایدی بیا بریم بیا بریم خودم رو گمه کنیم شاید قاتل اصلی پیداشه اگه نشد چی؟ تا آخر هم داداشم. بعد یه اون تنهای و بدبختی تازه پنمیدم عشق یه چی نمیخون به عشق دستت بدم به با همدیگه بریم بیا از این همه ای و بدبختی فرار کنیم شاده من خوشبختت میکنم یک کاری می‌کنم و همه این روزهای سخت رو فراموش کنیم فقط تنها اون نذار بیا بریم با دفعه پیش که اینجا بودین گفتی اگه سامان با اتون تماس بگیری هیچ حرفی باش ندارین مثل این که نظرتون عوض شده بله میخواستم بپرسم چرا این کارو با کرده درزه من به شما خبر دادم مادرتون خبر داد چه فرقی میکنم من فید میکنم نظرت نسبت به سامان باستی اسم واقعیش چیه نمیتونم نظرت نسبت بهش عوض شده سامان هر کار بفرما بشینی من مطمئنم سامان هر کاری کرده باشه قاتل نیست از کجا اینقدر مطمئنی اون شبر نگشته شرکت این رو خودش بهت گفت بل پس دوباره همدیگر رو دیدین نه. امروز که توی پارک هم دیگه اردیدم رو به من گفت. دیگه بعد اون هم رو ندیدیم نه. خانم میسن که شما اصلا متوجه نیستین جریان چیه. پای قتل حکم قاتل اعدامه. حکم کسی هم که به فرار قاتل کمک بکنه چند سال حبسه. شما چرا میخوایم منو بترسونید؟ ما فقط دارم قانونو بهتون میگم که متوجه بشه شرایط چیه. شما باید بگید قاتل اصلی رو پیدا کنید. قاتل اصلی فری نداریم. حالا مهمترین مزمون ما سامانه چون ما توازتونه جمع کنین اگه باتون تماس گرفت حتما به ما خبر بدین متوجه شدین؟ باشه نکرده ببینم چیکارو. درس نکرد همینجا یه آرش بوده یعنی. الان رازش می‌کنم حرف نازت. دلیل هر کاری کردان بخاطر تو بود. اساسا من برادر این دوال زندگی‌ست. پس کم کم باید اینو خواسته بادیم. اینقدر دست, دست کرد که خون خونم از دستمون رفت. این همه مدتی پسر اینو سر کار گذاشته هنوز دوسش داره. اصلا 100 درصد چیزی کسی بالای چشمه ندار نمی‌فره. قول هر شده از زیرامیدم. تو یاری کی یشم. آه در جریان بود زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یه و بارون آرید دستای خون پر از گل داودی شد از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونش بل شدم گفتم این یه ماجز است خیله شد به آسمون همه ستاره ها دونه دونه گل شدم مهربونی ایش نازنینی ایش آخریم تکه یین جورچینی ایش مهربونی ایش نازنینی ایش آخریم تکه یین جورچینی ایش باد بادکم و یه جوری با میکرد که تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم یه جوری تشنم کرد که میشد دریا را مثل یه یه نفس سر بکشم من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن های آخرش اقای خدا فزی تپش از قلبم مثل پروان نشست روی سنجاق سرش مهربونی ای یش نازنینی ای آخرین تیکه یین